بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل الله عليه وسلم يا رسول الله الله يحيينا فخرنا نحصمينا لا شكرنا الله منا اللهم انا فينا منير مشهدين لا شكر يا رحمن رحيم أستفيد معه الشيخ بعد از بیان آیات و بعد از روایات متحرزه این شده که آیا این غینایی که در ما در روایت آمده خصوص کیفیت صوتی که صوت یا شامل اونجایی میشه که کلام هم باطله بعد ایشون این قدی اختش و این کافی دستانه سبی دویست هشت شد شروع میکنه که برده لا تذر الله علی حرمت نفس الکیفیه الا منعیس و اشعار لحظه الحدیث اگر اینکه که چیز و اساسا نظر به حنوان باطل و حنوان لحظه و انتحق و غافی کیفیه کل کلام لافی نفسه تمایدات قد نافی کلام حق من قرآن او دعاء، او مرسیت رو و به جمهورت و کل صوت نورد و بی نفسی صوت رو به نفسه این این و باطل باشه که یعنی از اول تمایل پیدا کردن که غنا شامل کلام باطل بشه بی نفسه باقتن از از کیفیه و از ایشون بخواهد باید برگردن به این که نه کیفیه ده. که اعتبار که و اگر هم به جایی که کلام باطله گفته میشه غینا به خاطر گفته بحث به حال متعلمه یعنی به خاطر اون که مثلا موجب لحوه و الا به کلام گفته نمیشه بعد ولی ازا ایشون که اعتبار در حرمت غینا لحوه باطل بودن است شما خواهیتی از قبضال اعلام که ایشون کشور اشاره به بسنده میکنه از ریا ابن فضل بعد این روایت هست که میگه قلت انعام از عموم ان رسول رحمت الله فی انوال جئناکم جئناکم ان الله تعالی اگر فرصتی بود این روایت رو با سندش و متنش به شواهد تاریخی و تزاگر منعرض بشه ان شاء الله بعد مرحوم شیخ خی... با این که جناکم میگه کلام باطلی که نیست ما هم فهمیدیم این از مذکور از مرخص فیه به زمه هم لبس و لعن و لعن وقصت النبی فی فلیس شدید نقطه اون کیفیت هست ما کلام نیست اگر کلام هم باطل بود باید ارجاعش به به کیفیت و روایتی بیمونوز خواهد سرطور کراسانی از رزا زارن بازرن به نام و قلت اندر احباسی ظاهرا شخصی سران هشام احباسی که اصلش از این جهانی از طرف بلای سمرغنز اون طرف بسیار خطا و خودتلی بوده اصلی اونجا بوده این حالا جاسوس برای عباس روزه داده داره داشته این اسمش هشامه هشامه به اصطبع حباسی یا مشعری احتیاجی یک بحث نسبتا طولانی داره که الان مواردش میشه شد و اینشالله اگر جای روایتی بود که خودش راوی بود یا اثردار که اومد متعرضش میشین که اینجا هم متاسفانه مرمونه در اینجا هم یک ای کار رو کرد. فقال علیه السلام کذب از زندی این حدیث تمسطب میشه به این که مثلا می زشت یا سبد و میشو به کار بود من میشه اگه دینی بوده که پرد رو آشنا بکن مردم باشه رو او مطابقت نکنن نگردن ما این کدر و زندین ما آتدا قلطوله سهر میانه و قلطوله بودن رجولن حتی و جهتر علیه اسلام نه که خدمت ما هم باقرامن. امام باو این مطلب را فرودند بابا به امام اکثر گفتن چیه چون اخر هم در مدینه قنا میشناختن و عادی بوده امام میفرما که اگر حق باسر جدا بکن قنا با خودم میگه گفت که خودش گفت با باسر من خودیه و میگوه که محمدنا بی اخبار نمیشت وکان وكان به سما و به شاور نبی شخصی بوده که هر کس قنا شرایطی لیدا و رقیقا سرچو ز علی الصلا قال اهل الحجاز فيه ريحان اصلا در اینجا اهل حجاز مطلق نیست است که فيه و هو كي حيذ الباطل و النار جزء کلامی لهریه اما سمعت الله جل جلاله یقول الاغرو بالنار معو در بخش آیات در بخش استدلال متعرضه آیه اونجا بعد ایشون داره که اینجا داره سأل چونه عن سما ایشون داره که ولی غنا من از سما کما نصف علیه جوهری در کتاب سحا نمیشته غنا از سما من اینوزم نکردم نه دیروزن اینوز نشد که متن کامل عبارت جوهری رو نگاه کن اگر این مقدار باشه چه که شهر نه کرده که خیلی عبارت عجوهری میشون توضیحی نه در غنا من از سما من و قال ايزن ان اینکه کلمه ايزن آورده شاید نکتهش این باشه شاید توی ماده دیگه‌ای گفته راسته اون مثلا اولش تو ماده قرنا گفته این مطلب رو تو ماده صناعی گفته جاریه تون جاریه که تصریح میکنه یعنی صداش رو میرسونه اسما مصمعه احتمالاً شاید بعیده من یک سفریام که من سوریو و نشان این در درم تاکسی بوده اما حالت دربیشی داشت. گفت سمنه معنا یا شیخ سمنه؟ یعنی اون حالت سماعی از سماع در اصطلاح حالا زمان صحابی اینطور بوده در اصطلاح فارسیمون رقص آرفانه یا مثلا رقص آرفانه رو به اصطلاح میگن که صوفیه و درابیش انجام میگن و فی با احمش الواز فی تعداد الكبائر گو همرو من این توضیح رو چند بار عرض کردم ما چند روایت در باب کبائر داریم مختلف یه مقدارش مشترکه یه مقدارش مختلفه حالا فعلا ممکنه بحث پیدا بشه تو اونجایی که الان میذارن یا همین روایت‌ها یکی دیگه هم هست که بناجوزه کبائر قرار بوده شده بلا در بقیه متون معتبر هیچ روتر همش من صرف روایت باشه خودشو رو عرض کردم یه تکرار می و در اینجا قنا جز کبائر آمده و معلوم نیست این مطلب درست باشه جزه کبائر باشه و الملاحی علیتی تسود و انزکر الله کره قنا عنوان آمون ملها گرسه و ضرب اوتارن تار زدن ولی چیزن باش و قولی علیه سلام از سؤل عن جاریت المخدمیه امام فرموز عدیتون رجل جاریتون ترهی به جای مغنی هم اونه لحب میده و ما سمنها من در بحث به اصطلاح به مغنیه متعرض شدم انصافش این است که مثل بقیه جهاز در بقیه عرب بین این دوتا فرق میذارم بین اصطلاح اشتقاق معنای اشتقاقی و معنای حلسی مثلا اگه بگم به مبامنسان هم همونجه که اینجا که شون داره دیگه همه غنته جاریه جاریه خون با آواز خون رجو خون آواز معینی اما اگه جاریت جاریه جاریت مغنیه جاریه غیر از مثلا غنت جاریه تو مغنیه یک صفته یک صفت معینیه ما معنای اشتراقی داره دیگه یک لوازمی داشته از خارج حالا مثلا لوازمش پس که همهاش رخص رو چی بوده مثلا دیگه که اینجا در برس منا و لذا این عبارت از صحیح بخاری خوندیم همونجا اون خوندین قال دهلسا علی رسول الله و عنده و عائشه آش... و از و لهال جاریتان, لها جاریتان تغنیان ولیستا بالمغنیتین خیلی واضحه بگیرید اسناد حدیث رو داره و لهال جاریزان تغنیان لیکن لی ستاب المغنیت <تصفيق> نه اینکه این ها مغنی و آوازخان باشن اما داشتن دوله و با آواز میخوندن ولی زا تر از بین غمنا و بین مغنی این مثلا در لغت فارسی هم داریم مثلا یک کسی ممکن است با یک مثلا میشن پشت یک ماشین را خبار یک زحمت ماشین تو در خودون شما بیاد میگن ماشین رو آورد نمیگن راننده راننده نیست اما ماشین رو سه تا دوای دیگه برایش پیدا نمی‌کنی میشه راننده اما ماشین رو ران ران یک حسابه مثلا گوش رو بری اما میگن قحساب قحساب یعنی دوشتوری دوشتوری سه می‌کنه حساب اثر برنده باشه شما یه سی گوشو پره میگن گوشت بری اما بی نمیگن قحساب ما در اونجا در بحث جاری مقدرن شما یالا یواش تر صحبت واسه بحث بشین اونجا توضیح داریم که اصلا خود عنوان جاری مقدمه یا عنوان مرد یا عبد خودشی به عنوانی بوده ممکنه کسی عبد نباشه اما یک نیم سطری بنویسیم نوشت اما نویسنده نیست وقت در اینجا اول جاری جاری از اون طولیهی اینجا به نظر اون راویه که مطلب همین اون ظرافت رو نبرده. کلمه به کار نبره کلمه طلحی به نوع اسناد اشتقاقی است اسناد حدیث فعلی یا احتمالاً اینجا واسه اندهو جاریت اون مغنیه به کلمه طلحی مغنیه بوده یا عامل یک نکته رو به کار برده اون اسناد حدیث استقبالی آورده خود دقت می‌کنه اندهو جاریت رو یعنی این در گذشته زمان در آمدن زمان زمان‌های آینده این کارش لهه میگه این کی میگه در زمان در گذشته زمان لهه بارش انجام میده این مرادشه که مقنعه بوده یعنی اگر یک بار انجام داد میگفت جریانستون الهاش بود اما این در گذر زمان در آینده همینطور هی له اصطلاح لعبه این شخص انجام میده. در خب اینجا نظر به همون قیمت خودش میگه ما تماما تمام مورد ارزش داری گفتم. حالا ما از طالب میوامون خود راست شیخ انصاری اینجا داده. هست از مشکلات همینه. یعنی یکی از استدلالات باز بیرنامه اون میگه روایاتی که میگه تمان جاری مغنی جایز نیست مفضولش اینه که قنا جایز نیست حالا شیف اینجا از چه آمده؟ مخواد بگه اگه تمان مغنی جاری, جاری مغنی جایز نیست معناشونه که قنا جایز نیست و در این حدیث معنای قنا لحوه پس کلام باطل نیست. سرسنشون چون و اندهو جاری از اون طور بله که شهر انسالی اینقدر مثلا خوزشون پرد بسید این دوباری در با ببینه جاری مقردی هست وقتی به غنا هر به ملازمه اگر جاری مقردی سمن ها کسان رو کرد پس غنا میشه حرام دو غنا هم کلام باطن نیست لحوه کیفیه یعنی کلامی که مناسب با لح و لعب و حالت رقص و حالت اینجوری برای انسان پیدا میشه اشتران مثلا حرفه بیهوده رو زن شعبه بیهوده بکنم جنبه لحوش مراده و ما سمنه ها الا که سمنه کم و را در اخبار و اصلاح هرمت و غنا این نهیجه نهایی که مرحوم شیخ میگرد منهی تو لحوه الباطل فرغنا و یه مقوله تلکیفه تل اصلاح تماسیجی امکان مسابین لصوت لحوی الباطل کما ها لحوه فهور امکانه هم به پتخیلو هر حال یکی یه که ما معیارون لحب بودن میکیریم برشی که لحب باشه و نمیدیم دو تا یکی صوت یکی کیفیت یکی خود کلام در نتیجه نهایی که ایشان میگرد قبل جمله تا و هم من لحون اهل فسوق المعاصی تو رایست که مناسقه با اهل فسوقه مناسقه با اهل معاصیه اندر تیبر از نهر در آخر قرآن جهاز سوام خانه موسا بیاند حالا باید این معنی با قرآن با بران با یکی باشه یکی باشه تا اینجا مرحوم شیخ سعی کردن روایات رو ارجاع بدن به یک معنی مثلا کل روایات رو به یک معنی ارجاع بدن و اون مسئله لحب آدم مثلا علماء خودش سرگرد بکنه بازی بکنه برده از این جهت اصدا امام نهترده بعد از این البته این ظاهرش اینه که ایشون تا اینجا بخواستن موضوع جنا رو بشن خرسته مفتوم جنا چیه بعد وارد بحث لغوی ها شده از اینجا می که برده اختلف ترسیح عبارات و فوقها و لغوی فعن المثبات. مراد از مصباح الجل مصباح المنير و توضؤ نکردیم چند بار اذکاری مصباح المنیر شبیه استراحه المنیر در اصطلاحات اصطلاحات کتاب سنت شریعت اقرایی که از طور فرشی مصباح المنیر کتاب مصباح رافی بنذر چی کنیم تایومی تایومی چند رافی صاحب مصباح مصباح ایشون در حقیقت آمده شرحی کتاب فقهی نوشته البته من توضیحات شم باره از کردم در خلال بحث فقهی گاهیم بحث لغتی سه رو فکر شد میکنیم لذا کتاب مثبارمونی تماما فقه نیست تماما لغت هم نیست محسوب داره با به در نصباح مونی در نصباح مونی این نرغنا از صد و این آخر آخر آخر این نهومد صد و این نهای ظاهرن نهایی نحسی مورد باشی این شاکری غنا تحصیل صد پرگی و این نهای ایزن این کل مدفع صد هست هر کسی چیز صدا که بلند بکنه و بالا ما والا تنین پشت سره هم حالا تکیم چرچه همین ببارسی از و غالا تصورت و اندل هم جناه ایشون سعی کردن تفسیر لغوی قناه را هم بگن که اگر دربارت وارد شده به این معنا بگیریم بعد ایشون خودش معنا میشه البته در اینجا من از میگم فقط تذکر میدم یه تصنصر طبیعی ما طبیعتاً داره تو بحثات مثلا اول لغتی این گفت دوم لغتی این سوم گفت این, این یک دو معتقد این که مثاله دورد که لغتیانی هم تحلیل بکنیم طبیعی بکنیم مثلا چرا در مثال گفته چرا شافی اونطور چرا در نهایه نزیر از دن آهلی اینجور نهار کرده این نکات رو بار انجام داد اینا متعصبان در کلمات شیخ مراعات نشه ایشون میگه و كل هذه المفاهیم مایی و و و اگر صفت برنامه علیه فا كلها اشارتون الى المفهوم خب هم خاصنه خب اینم یک راه اینم من الان رو میکنم شاید در آخر نمیخواد خیلی خودمون معطل و قرینی بونه یه ادعاهام گفتن اصلا این لغوی هر گفتن اون که گفته مد و صد با اون که گفته ترجیح و صد با اون که گفته ترجیح و صد با اون که هر سر رو برده گفته نمیدونم فرضی که صد مطلقا مطرق بودن این ها همه مرادشون یکیه ایچه همه میکنم تعاویرشون متعدده مراد جدی یکیه این یک راه راهی دیگه راه ایست که مثل در این کتاب روی ترکیه اینا تعریف شروع اسم هستند دقیقه توشون لازم نیست این چی گفت؟, چی گفت لازم نیست اینه اسم هست این هم راه دوبار صحیحش در اینجا چیه اصل, اصل مطلب چیه اصلا بگیم اینا واقعا یک مقروم واحدی رو رازه کردن تابیر رو یا قاعد بشین که اینا شروع اسم هست اینا دقیقت نشده که اعتراض و و بحث و خیلی دقت ندارم اصلا بینید که ما اصلا هر و فرد هر دو فرد درست نیستن نه من که در خلاف بحثا اشاره کردم بعضی از مخاهیم اصلا تهدیدش خوب بلعاده و عوامل متعددی هم درشت خواهد داده یک عامل واحد نیست. الان شما میدید مثلا گنا در فرهنگ ها موسیقی ها در فرهنگ های مختلف مثلا در چین یک جور مازی یک جور سیاه آفریقا یک جور در فرسان صفقسته آمریکا یک جور در خود آفریقا شما یک جور مهده این حالت هست یعنی یک مشکل اساسی خود کلمه گنا ممکن است که چیزی برمان گنا حساب بشه شما تا ببینید ما حالمون به حال فسق جناوتیم. مثلا مثلا میوازن سیاها با چوب با همگی یک نوع بازی انجام میدن میگن اینکه نصفون با یک خاصی میخوان. شما اصلا ممکن است که ما یه جنا نمی دونید. حالا همین امروز که شما نرسیدید ان شاء الله عرض می‌کنیم شیخ و علمای ما دو مورد از جناء استثناء کردن یکی خدا خدا چطور؟ یک سری مخصوصی کلمات ها میگن برای چطور که در اون سلسله عصبی شطور اثر عصب می‌ذاره شطور تنتر میره و بعد از که حدی میخونه اینو اسم خدا بهش میگن که یا به فارسی و اون کسی که اینم انجام میده هادی هادی با ه ی و دال و یا این کسی بوده که میخونه تا شطور به حالت ورسی بیاد و احساس خستگی نکنه و سفر انجام بده من شب تا این بحث های صحابه های این وقت اشاره کردم در میان عرب ها در میان سمالوگرمی عبدالله نرواهی عبدالله نرواهی دید که حایی بسیار محفظه بوده خیلی فوقالاته بوده عبدالله نرواهی معروف حدی رو خیلی خوب. و این نوع اتدار جوری بوده که چطور به سرعت میگرسه من در شرحال بحث تاییه که نگاه میگرم و جیره بعد از این حدی خانه ها رو ن این اینقدر مؤثر میکنند که شطورو که باقیز از گودی میگن این شطور اصلا ما اصلا به رخص میمان اینقدر تون میرفید از تا جایی که اصلا میرفید دو باقیز شطورو که داشت اینقدر تون رست دو شطورو که همجر میمان اینقدر این خودی در مؤثر گودیست بگرون سابقاً آنیزم من گایی که تلیزینات چیه را دیوی حجاز رو باز میکردیم یه ساعت هشام بودی داشت رو بیه باقی خودشون و اون لرگه خودشون در چیه بسا بدلی خب چون ایران ما هودی نبوزه خب بزرگه ایران فقط ها نبوزه که الان هودی بوزی ساله که اتباه موجود حتی پرزیوش را دوری این شعر داره به که واقعا هم بود قصاره درشنگونه شعرهای خوبونه خفتر و ترگیه ها حادی اون حادی رنگیزه این آهسته اولیتی که خودی میکن خفف سه این رو چیزی نهت من میگه فارسی ترجمه کرده ای سالبان آهستران این همون مثله ابن فارضه خفف سه و تعدیه ها از تعدیه های تعدیه آرامش برای آرامش ها. و تعدیه ها دیه نمائن سالبان برخوا آزیز داری علمانی یه همین فارسی معروفه که خفف ای سالبان آهستران خب سعدی بردسته حادی رو ساربان نرمکه ساربان حادی نیست ساربان اون شطور رو میگره حادی که میخونه به قرآن میکنم یا چیو سرهنگ وقتی عوض میشه یعنی اگر نرمز حادی رو میگره چرا فایستانو میتونه حادیه نیچی قاید حادی که میشه نه ساربان شطور رو میکشی نمیخونه که اون جزازانه میخونه بایی سوار شطور رو میخونه لازمیست که سار دقت بکنه یعنی برای اثر اون صدای خوشی که بود اثر خود من گوش می‌دادم توی یعنی توی عرابیایی که از حراج گوش می‌کردم گویا مثلا یه باز میشه خب اصلاً هیچ برای انسان شکوه‌ور نمی‌شه صدای مخصوصی از بدی می‌خونن یه لحنه خاصی برای اینکه خب شطور رو به تریج بیاره خب صدایی که می‌خواد شطور رو به تریج بیاره که تو انسان حالاتی ایجاد بکنه در اونجوری دوباره بغضی باشه خب اینا دیگه علشان ما تو اخر صفحه نمی انشالله ماشي ی وسط از معای حرمت مینا دو تا یکیش بودی چطور اسی بودی چه را نمیگه خب بگم جامعه ای مشکلی داره شاید بین عرب خوش مثلا کس صدا و درداد روان مثلا وقتی هودی میخونه رو تاثير میเกرد اگر فقط شعر نمیخونه اصلا در انسان ها تاثير میเกرد این یک نکته خیلی مهم اینه که یک هرند های از یک وضعی هست ممکنه مثلا یک جنایی مثلا در جز. مثلا پس این در هند انجام بدن که برای ما هیچ حالت جنایی نداشت داشت یا یک جنایی پس در سرک آمریکا امریکا یا جایی انجام بدن یا در از اون ساکنان هستی که یک جمعه جنایی نداشت پس یک مسئله اینه که خود مسئله پی مختلفه اینه یه که بگیم همه ارجاع به قید واحده درست نیست واقعیت های مختلفی هست نه اینکه یکی یکیه و یکیش اینه یکی موقعی دیگه که من کردن ارز کردم و اون این که ای از این کتب ما یا اصولا متاثره به جبه فقیه هم. مثل این یا مجموع بحره در پیش ما یا اگر متاثره اجمالاً متاثره اصولا دقت بکنی من چند بار این بحث رو ارز لغت در دنیای اسلام قبل از اینکه به اختلاف مذاهب بشه، قبل از اینکه اختلاف مبانی کلامی بشه، قبل از اینکه اختلاف فکری بشه، لغت تدوین نشد. این یک مصیبتیه. لغت عرب در دنیای اسلام بعد از اختلافات فکری تدوین شد. درک می‌کنید شما میان؟ نه اتفاقاً اختلاق قیدا شد اگه آمد معتظلی آمد چرف راست اینجا فوقه های مختلف آمدن بعد از اینکه این, این فوقه ها آمدن و مبانی و مذاهب و آمدن روی تس... تس... تس... کتب لغت نرشتن خالی نخواهی افراد متأثر میشن به تفکر خودشون من چند باییم میذارم هستم موقعی اصلا دیم دیگه ما مثلا اگر به ما بگن اینالله اشتران المومنین اموال هم و انفرس هم به انده لهم اون از بای فهنده می مقابله هست نسی که بگه بدهم. بده مقابله می فهمی. اما صاحب مغلیشون خودش اشعریه قائل به مقابله نیست قائل به وعد وعید نیست قائل نیست که انسان استحقاق عمل استحقاق خواب در مقابل عمله. باز مقابله عمله میگه با در اینجه برای مقابله نیستید مذهب فکریه خوبی تو بله ما ابتدار مقابله می فهمی. اون مکتب سکری کلامی رو میاد توی حدیث میاد توی آیون بارکه و توی معنای با باره میکنه به اله آخرت این بحث بشین خیلی طولانی لذا به ذهن ما میاد این اختلافاتی که هست یک ارجالشون به معنای باره دوست نیست دو اینا شرحال اسم هم نیستن این که میانه شرحال اسم هست نه شاعر ولی اسم و با حواایب مختلفیام. فرض کنید اون رو در زبان عرب جنا میدونستن شما به شناسی هیچ احساثی در دست نمیذید هیچ. چقدر این چیز چه نه چیز در دنیا شده صدایی که مثلا چند نفر بیعلان گرد میکنن برای اینکه شطورها به هیجان بیاد. این چه نکته برای انسان پیدا کردن چه لطافتی چه و سلام منشأ رزقی برای انسان میشه دقت میکنید؟ خاص متاسفانه این لحظه قناع از است که فرهنگ های مختلف بوده از کردن در کتب احزه سالنه داره که پیغمبر اکرم سر قناع بوشنه که سرکت هم از کناعی سودان از حوشه برزی آمد خب ما وقتی میریم چون عکسی که از این زمان نمونده وقتی تو اون تصویر قناع اونا که اینا میوندن تب میزن به این خاصی با همون سیزای خالشون میخون این رو اسمشه قهنه آخو داشتن ما الانگه ببینیم اینکه برا ما احساس نداره قهنه حسابشون میکنیم این مثلا ما فوقش میگه موسیقی محلی اینطوره حساب میکنیم دیم. مثلا چیوی برای خودشون هنگی ها برای خودشون فرسون مراسم خود ایران مثلا لوره ها یک جور دارن بلیوچ مراسم خاص خودشون دارن موسیقی خاص خودشون دارن. پس یک یک مشکل بوده که اینها همه رو یک محور واهدی نبودن مثلا همهش در انسان ایجاد به شعور یا میگن فارابی که قوغلاده دلنوسی در, در این فلسفه کاربان که حرکت می‌کرده جوری مثلا این شطورهای زنجیری تو طور میبسته که وقتی مثلا راه می‌رفتن همه اهل کاروان خوابش اول تنظیم ها صدا, صدا خواب‌آور می‌شه یا مثلا وقت عمل می‌کنه صداهاش خواب هم مثلا می‌دونی مثلا صدای فر این حالت در همه اصواد نیست در همه قناه ها نیست اخ مشکل اینجا میشه که اون روایه که میاد رو جنا، که میگه جنا حرامه یا مثلا قول از و سن قول از زور که این قول این با مشکل روبرو میشه این یک در کتاب فقه که این مشکل کاملا واضحه چون مبنیه فقی داره اونان در کتاب لغت هم به و لایشو با مشکل پیدا میکنه ممکن این آقا یک ای آقایی باشی که بگه قناهی که حرام هم مد و صوته نمیخواد مطرد باشه اصلا بلند کردن و صوت رو آدم بکشه این حرام خب این میاد بگه قناه مد صوت اون معنای فرهی من صلاحی شما رو میاد توی معنای لغوی یک مشکل معنی شیخ و دیگران کلن اینه رجوع به اقوال لغوی این مشکل رو به سور کلی داره مضافر به این که هم تراغات دارن درجات دارن وزید دارن متاسفانه در کتب ما الان وقتی که میخوانی به محکومه قناه به کتب لغت مراجعه کن به همین صحیحی که میبینی مثلا یک کلام دوره از شافی نرکنه خب شافی فقیهه وقتی شافیه میگه جناینه اینه این محرم رو میگیه به قسم میکنی ممکنه قناه محرم پیشه بود دو تا قید داره پیشه این داره. بعدی که دو لغت مثلا خود گوغوی میاد که در اصطلاح اینمون صاد در لغتینه خودش داره تفاوت میذاره تو معلوم نیست وسیش باشه آه. اگر تفاوت بذاره معلوم نیست اصلا از کجا بیاره لغت از خودشه چون از که باز مشکل تاریخی میاد شما مثلا شلوف تاریخی مثلا که زبانان اینکه یک ما لسان عربی ند زده لسانال عرب اینطور داشته لسانال عرب اصولن خودش چیزی نداره پنجش هم از سر گرفته خیلی ناظر خودش ابن منظور اگر چیز داره ما خودش ازمان دیگر آنم آخه ادعا میکنن میگه مثلا خب خواهم ادعایت کنید و کلون یدهی وقتن به لیلا بله و کلون بله. یدهی بله. بله. بله این هست که بعضی از اینها سعی کردن میگه شما فرمودید سعی کردن متأثر به اصطلاح نشد برگردن به صلب لغت مثال باردشون جو من میشه خورده از اونم مثال باردش عبادت که بعد میگه وقترب سه ها هم سری کرده میکنه از اون بهتر و انهل اساس لزمخشری خیفتون لسرور اوهمه اساس البلاغه زمخشری جزو کتاب های کمیابه در دنیای لغت نگه کم هست همه دیدار نیستن ایشون تن هم یه منو تن هم باشه هنها کتابیست که سعی میکنه حقیقت و مجاز را هم جدا بکنه اصلا این لحظ در لابطه عرب معنی حقیقی و دقیقش و من مجاز مجازات را هم میاره این کتاب اساس البلاقی زمشتری مثلا این در کتاب نهایی شام نهایی ابن عصیر رای آمده بود دقیقه میکنی چی بخواهم این اون نقطه ایست که من عرض که مرحوم شیف و نشه جهان را همون طور دیگه هم اختصف... یعنی اون در حوزه های ما اینطور شده الان متأسفانه در حوزه های ما کلام لغوی رو به عنوان یک میاری میاریم و اونو قبول میکنیم ما هر نمونه‌ای که این علوم لغوی ها هم شخصشون قابل تحلیل اینطور نیست که تعبدی باشه <تصفح> یکی متأثر به فرهنگ فکریه یکی متأثر به راههای دیگه‌یه یکی اصلا ممکنه خیلی دقیق نباشه در اصطلاحات روششون فرق میکنه مثلا پس این راقب اسمان در که تا در کتاب در, در قرآن آمده انصافا در تحلیل لغوی خیلی دقیقه انصافا لیکن این نیست که دهوال اول, اول, اول آخر و الاخر از پس این این کلام شما در مورد لغوی دل جمله ما بله فضیلی شما بل خیلی دل جمله لغوی قبل بکنه خیلی مشکلی نیم یا خیلی دقیقی ارتکاز مردم دو واسه در بشه. کمتره ست سال عوض میشین جا به جا شده وقتی سه چهار تا لغبی مختلف نرمونی کنن اینا میگن ارجاعش به یک معنی بدید که ارجاع به یک معنی بدید اینه چرا ارجاع بدید چرا شرمان اسم باشه شرمان اسم نیست یکی میگه مد و صوت من تحسین این قناس یکی میگه نه باها ترجیح هم باشه یکی میگه نه باها مطرف بده. میخواد یکی هم ن این چون تفکرات مختلف در معنای اینه نه اینکه ارکان همه بیه که دقیقات میکنم که ما بگم وقتی نتیجه ما ما چی کار در درفه ما درفه وقتی میدیم که استراب پیدا شد اولا تا خودمون تا با شواهد لغوی با شواهد تاریخیم از هم اشاره کرد توانستیم برسیم به یک نتیجه واضحی که میرسیم لاحقا نتیجه میشه که منوشی قناع اصلاقات مختلف داشته این روشن. و اگر در رواید چون در عوضی کتاب که قناه نمیده اگر در رواید قناه آماده از نظر فقی برمگرده اون قدم حسی افر نمیدیدیم اینه ما خواه بگیم که ما یه دفعه با لغتی با عنوان با عنوانی که من کامانه کتاب لغت بنویستم این اکبسته یه دفعه مخواهی همین موانی لغتی رو بکیشیم فر... آخه نزیگیری فقی بکنیم اگر ما باشیم روشن شد که بیا ما میگیم یکی گفته مقتضاست یکی گفته تحسین و یکی گفته ترجیح یکی گفته ترجیح و یکی گفته مصلح هم باشه ما نتیجه چی میشه بگیم بگیو قدر متوقع مگر شواهد روایی پیدا بشه قدر متوقع هست که تازه هم استفاده بشه تمام این اوصاف در جمع بشه این قدر متوقع از اون قنای محررنه نه جمع فرض جان نکردی؟ نه میگیم چند تا معنا داره. این قدر متعقبه است که حرامه. بقیه منو حرام باشه. جان نگردید. ماده صوت هم حرام باشه. تحسین و صوت ما حرام باشه. ترجیع و صوت هم حرام باشه. دقت فهمید؟ جمع نکردید. تو مقام احساب افزا... این چون اینکه اینجا من میکنه چون اصلا ما مورد نکاسه نیست. نحوه کار، نحوه برخورد ما با ها و نهفیه تفسیر ما از کلمات ایلوگویی ها. بله ما هم این من هم, هم از ده کلمه بله من صبر نمایی و رونی روانیم شمار میکنم. ایشوم که ولی احصان و منرکول ماته من اصلاها یه نفهم مام نفهم میولیم. الله آنگی مارچو بذن چیزی دختر. یه احصان نرکول. ایواره سهاد یه چی ندارن اینطور. ایواره من چون نشونگذار دساهو جواری مارچو این این در صخیه قبلی ولی بنام از سما که ما نه سلیف دساه. هیچی چیزی نیست که ارگناب نستم ها که تفسیر خوبی نیست که چرا هم گفته احسن اون رو کل نفرمیده من می رو دیدم برای میره چون ما هم نفرم بگیم سو, سو شیخ فرمیده احسن این بعدش خوب بکنید بکنین بعد از این عبارت در عبارت بین این به اصف این چاپی که الان درست من هست صفحه دی و و دو منطبه شیخی که ولقد اجاد فسه ها حیص و جناب به سما و هوال معروف و انده اهل الارد اگه آقاییم کمپیتر این عبارت سه ها رو در بیارن من احتمال میدم شاید این زیر عبارت سه باشه و هوال معروف و اهل الارد اگر به واسه سحاح رو داریم ها اون که ماده سمعیه به سحاح چون من نشون مراجعه کنم نه دلیل اصلا رو نشجری می بلده وقتی مراجعه خودم بکنم علایانه میگه ولی بله احسن و من کل در این بحث امروز ما ثقت در نه سحاح اینجا میگم لاغته اجازه به سحاح حيث خصا بر جناب سماق دناع و دناعت سما و هو المعروف اگر این هو المعروف عند اهل الارض این گرد تو خود صحاها باشه خوبه یعنی مرحوم شیخ این عبارتش از هر بهتری چون اوجای با داده باشن شو این توی چه عبارتش چون توی قبلی که نبود این توی این عبارت بعدی حدود چارفن سطح برد. و قبل معروف و این اگر او ها از معروف در احلال او تو خود عباره سحاف باشه تو متن سحاف باشه انسامن هم باشه شه. اشکال ایدوانی هم منطبی میشه ماده, ماده سمعه سمعه رو بیاری؟ نمیشه؟ نمیشه؟ بله؟ هتمن یعنی اینجا نمی کردی؟ در این حاشیه که هست؟ نمیشه و بنوبل صح من چی یه بندوره بنام مکسورون قالو دیگه مکسوره اون این تو ماده چیزه ماده قنا نه داره تو ماده تو ماده ثنا هم نوشته ماده ثنا بیا همین؟ اشکال های ایرانی بایده ولی افتران ماتقدن اصلا اعباده با قول های ایرانی یه ای غنا و سما ترسیده مثل همه سما هم موبم غنا هم که موبم این که سما مسلم بود اگر سما مسلم بود خوب بود اما اون مسلمی مگر اینکه شیخ میگرد مرحومی شه قدس الله نفسه کتاب کم داشته شاید در نقلی که شده این وحوال معروف انده اهل ارخ نقل من خیلی توی بحثی شیخ نگار کردم چون این معنان عبادشه اصلا از چند شیخ عجله ما با چه طلبان موگونم از چند شیخ عجله اصلا کل معنان دارد عباد قدسه ها کاملا مجمله مگر این که برش نقل شده وحوال معروف انده اهل اگر این زیده عبارت تو توی عبادشه ها باشه لا برس و یک رومن هم من المحکی من المشهور دو وقت ایشون بگه قریب از این اینم بزرگوشن نیست یک من نفرمی یک رومن چیه یک رومنی هست مشهور بین فوقها مد و صبت المشمله علت ترجیه المطره ای یواشو شیخ بیود رو بیان میکنه. بیان و اما ترد علام آفسته ها خفتتون تأثر الانسان و این قیل مدخل المدخل مرادشون از قیل قیل المطره بیاریم در هر چیزی که اشکال ما شهیدی وارد نیست. فی افراد الله هو و هوال دلیل اراده و شاره اشاره به قول اثرمان و همچنین نصیری و و دهه بر انسان داریم. این یعنی مثلاً تو مزد فرسوده ای شدی لی بذن مثلاً تراب می‌گویی. همون ش... نشاط و قول معلوم بر جذب دن و بلندش خب دلم خوب. یه حالت خاصی بر انسان پیدا بشه. و الله صمجر از سرور اول هوز ملاعرب آدی. مرا تراب اون حالتی که اصل هر واو و ی حرکت ها حرکت های خاصی وجود داره. بل ازا فمجرد و مد و صوت لا مع الترجیع المترج اول و مع الترجیع لا میگیره چون هو لهره. شیخ اصلا مکانی عباراتش ابهام داره. خوب بود اول عبارات لغویینه میورد بعدن عبارات فقها بعدن نتیجه گیری نهایی. بله. و لزاییشو میگیره و مکتبا به ذکر ترجیع کله قواعد علامه گفته مد و سود المشتمل بر ترجیح اراض لیگ المقتدی من اعتراف که موجب طلب هم بشه دقت کنید مثلا روشن شیده اشکار من اینه که چرا علامیه که گفته مد و سود المشتمل بر ترجی شو این ترجی المقتدی چرا متور زده این رو اون ذهنیتش که این تفسیر با تفسیر دیگران یکیه ذهنیتش کجاست خوب دقت کنید من یک نهم عبارتی شون یک غیر هم تو سر جانتن که در این بحث وارد شدن میگن اون آدمی که گفته این، مرا دشمن آج گفته این، باون با آجی گفته این همه چی این اصلا نیست. اون یک مطلب میگم. شاید در نظر آوره که الان ترجیح گرفتند نزدیک آجی ایزدند. همه این مردال کافی میذاره دندار فرم دادن. اما اون آدمی گفتنه ترجیح تنها کافی نیست بعد حالاته ترک هم حالات رخشونن برای انسان ایجاد میکنه. تکان بکوی. این نیست که اگر دقیقی من مرادی من باشن شد که کار مرموم شید. چون ما مراد اون دستا نقط دست دو داشتن اون مواردی که اشعال به کلماتش شهر بازه و من اکتبا به ذکر ترجیح که قوائد اینه علامه اراد بیهی المحتضی لد اتراب. نه مطمئن ترجیح ویخه شاهده می کنم اوزن زارم قاله به جامعه المقاسه جامعه ما مرموم کلفی کلیفی شهر قوائده لیس مجرد و مجز سود و این مالت علیه نفوز مالن یا انتهه یکون و به ترجیه المختزی لیل اطراب مرحوم شیخ مخواهد بخواهد نگاه بکنید جامل مقاصد همینو فهمیده که باید اطراب باشه خب اشکال به من رو بخواهد اشکال به جامل مقاصد اشکال به شیخ این در حقیقت نه این که جاموال مقاصد مخرافت مراد علامه اینه جاموال مقاصد مبنی خود رو میگه به تو مطلقه جاموال مقاصد یه مجرز مددصود این قنع نیست اولا ممکن است کسی که نهمن مجرز مددصود رو قنع نیست مددصود اگر مشتمل ع Señor ترجیه قنع نیست صحیح و بالس قالت باشی این رعی جاموال مقاصده نه رأی علامه ممکن است علامه نظر شید باشی که خودترجیه قنع مخواد مصرف باشه مخواد مصرف نباشه پس این مطلبی بکرد شیخ در اینجا و بعد شیخ هم بردیار سر کردن این به اسطلاحی یکی بگیرن انصافت این مطلب هم درست نیست ما این مناقشات خود رو میگیم که آخری